فصل 11. تغییر فصل در بعضی ها با مهاجرت پرندگان یا جزر و دریا مشخص می‌شود. اینجا در شهر کوچک ما بازگشت گردشگران بود که می‌گفت فصل تغییر کرده است. اولش تعداد معدودی افراد با لب خندان و بارانی های رنگ روشن و کتابچه راهنما در دست از قطار یا اتومبیل پیاده می‌شدند. با گرمتر شدن هوا و پیشرفتن فصل خیابان اصلی مملو از گردشگرهایی میشد که از دود کردن و فس کردن اتوبوسهایشان به استفراق میافتادند. امریکایی ها،, ها، و گروه های دانش آموزی خارجی در اطراف قلعه پراکنده بودند. زمستانها فروشگاه های اندکی باز بودند. مالکان فروشگاه‌های ثروتمندتر از فرصت استفاده کرده و به خود مرخصی می‌دادند و ماه‌های سرد سال را به خانه‌هایی که در خارج از کشور داشتند می‌رفتند. مراسم مختلف کریسمس که در سطح شهر و خیابان برگزار می‌شد، شامل کنسرت‌های آوازخانی و نمایشگاه و بازارهای مکاره مخصوص عیاد بود. با گرمتر شدن هوا، پارکینگ قلعه پر از وسایل نقلیه می‌شد. کافه های محلی با تقاضاهای روزافزون ساندویچ نان و روبرو میشدند. یک شنبه های آفتابی، حال و هوای شهر بیجنب جوش و کساد ما تغییر می کرد و مقصد گردشگران انگلیسیه های سنتی میشد. قدم زنان از تپه بالا رفتم. تلاش می با مسافرهایی که زودتر از فصل گردشگری بودند و با کیف کمری و کتابچه های لب برگشته و کهنه راهنمای گردشگری می برخورد نکنم. دوربین به دست آماده گرفتن عکس از نمای بهادی قلعه بودند. وقتی نگاهمان به هم میافتاد لبخند می زدم. چند بار هم ایستادم و با دوربین هایی که دستم می دادند، از آنها عکس گرفتم. برخی از افراد بومی از فصل گردشگری شکایت می کردند. ترافیک سنگین، توالت های عمومی شلوق، درخواست برای خوراکی های عجیب و غریب. سوشی ندارید؟ حتی ساندویچش؟ اما من شکایتی نداشتم. از دیدن خارجی ها خوشم می آمد. کلی که از خارجی ها می دیدم، با تصوری که خودم در ذهن داشتم خیلی تفاوت داشت. از شنیدن لحجه های مختلف خوشم می و دوست داشتم بدانم این افراد از کجا آمدند با دقت به لباس نگاه می‌کردم که هرگز در کاتالوگ نکست ندیده یا از مارکسندسپنسر نخریده بودم همین که کیفم را در راه رو گذاشتم ویل گفت سرحالی توری گفت که انگار نباید سرحال باشم چون امروز رسیده یعنی چی؟ میدیم بیرون. میخوایم نیتنو رو ببرین تماشای اسب سواری. نیتن و ویل به هم نگاه کردند و من خندیدم. صبح وقتی خورشید را در آسمان دیدم، نفس راحتی کشیدم. هوا فوقالعاده بود و من میدانستم همه چیز به خوبی پیش خواهد رفت. مسابقه اسب سواری؟ دسته کاغذ یادداشت را از جیب درآوردم. آره، مسابقه از سوادی، لنگفیلد، اگه همین الان راه میفتیم به موقع به دور سوم مسابقه میرسیم، من برای هر مسیر پنج پوند روی من اومند شرط بندی کردم، پس بهتر حرکت کنیم مسابقه سوارکاریه؟ آره، نیتن تا حالا نرفته به مناسبت چنین روزی، پیراهن دوزی شده یک کوتاه آبی و چکمه چرمی سوارکاری پوشیده بودم. شالی هم دور گردنم بسته بودم که دور تا دور لبهش طرح دهنه‌ای اسب داشت. ویل فرান্দازم کرد. بعد صندلیاش را حرکت داد و به طرف پرستار مردش رفت. نیتن، آرزوی دیرینه توئه؟ خیلی دوست داری؟ با نگاه هم به نیتین علامت دادم. نیتن هم لبخند زنان گفت آره خیلی خب بیاید را بیافتیم البته باید بگویم من نیتن را از قبل در جریان گذاشته بودم جمعه زنگ زده و پرسیده بودم چه روز وقت دارد خانواده ترینر هم موافقت کرده بود به او اضافه کار بدهد خوهر ویل به استرالیا برگشته بود و فکر میکنم میخواستند خیالشان راحت باشد که یک آدم عاقل همراه هم است. با این همه تا روز یک شنبه واقعا مطمئن نبودم که دقیقا چه برنامه ای دارم شروع خوبی به نظر میرسید در چنین روز دلنگیزی بیرون میرفتیم نیم ساعت رانندگی هم بیشتر نبود اگه بگم نمیام؟ ام، اون وقت تا باید چهل پند به من بده؟ چهل پوند؟ این از کجا آوردی شانه بالا انداختم شرطبندی کردم پنج پوند برای هر مسیر تا مسیره که میشه چهل پوند مطمئن مطمئن باش که من اومن میبره ظاهرم غافلگیرش کرده بودم نیتن دستش را به و زد <تصفيق> چه عالی چه هوای خوبی هم هست میخوایی قضان بردارم؟ گفتم نه، رستوران خوبی اونجاست اسب من که برنده شد نهار مهمون من ویل پرسید؟ ام، تو همیشه میری؟ اما پیش از اینکه حرف بیشتری بزند کتش را تنش کردم و دویدم بیرون تا اتومبیل را بیابم. قشر کامل کرده بودم. در یک روز زیبای آفتابی به مسابقه اسب سواری می‌رفتیم اسب‌ها اصیل و قشرو و کشیده و خوشقد و قامت بودند سوارکارها با مهارت تمام ها را از جا می کندند و به سرعت باد میگذشتند؟ احتمالا یکی دو تسمه برنجی هم داشتند جایگاه تماشاچیان لابد پر از مردم هورا کشن بود جایی پیدا می کردیم و از آنجا برای اسبهای مورد نظرمان ابراز احساسات می کردیم. بیشک حس رقابت جویی ویل برانگیخته می شد و نمی توانست بی تفاوت بماند و تلاش می کرد از من و نیتن پیشی بگیرد. فکر همه جا را کرده بودم. مدتی بعد از تماشای مسابقه به رستورانی که دید خوبی به میدان اسبدوانی داشت می رفتیم یک غذای شاهانه می خوردیم. احتمالا به حرف پدرم گوش داده بودم که وقتی پرسیدم امید چگونه می تواند برنامه پیروز شود، جواب داده بود یک برنامه خانوادگی ترتیب بدهید و بروید تفریح. صحیح و سالم به آنجا رسیدیم. بیان که حادثه پیش بیاید. حالا اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده بودم و خیالم راحت بود که اگر با سرعت بالای دویست کیلومتر در ساعت هم بروم، هیچ آسیبی به ویل نمی رسد. تلاش گردم تمام راه را به شوخی و خنده بگذرانیم. از آسمان آبی زیبا و فضای سبز اطراف شهر که جدا دیدنی بود حرف زدم. خبری هم از ترافیک نبود. هیچ صفی برای ورود به پیست اسب دوانی ندیدیم. البته راستش را بخواهید کمی توی ذوقم خورد. پارکینگ هم علامت گذاری شده بود. کسی به من نگفته بود که چمن است. چمنی که در طول زمستان پرباران زیر چرخ اتومبیلها ها لگت کوب شده بود. به یک قسمت دیگر رفتیم. سخت نبود چون فقط نصفش پر شده بود. همین که سطح شیبدار به حرکت درآمد استراب و نگرانی وجود نیتن را فرا گرفت. گفت اه، سیادی نرمه. توی اون فرو میره. نگاهی به جایگاه تماشاچیها کردم. آره ولی اگه بتونیم به اون گذرگاه ببریمش خوب میشه این صندلی چرخدار یک تن وزن داره هزار مترم که راهه آه بیا بابا حتما این صندلی چرخدارو طوری ساختن که بتونه روی زمین نرمم حرکت کنه صندلی چرخدار ویل را با احتیاط عقب اقبی بردم چرخهایش چند سانتیمتری در گل فرو رفته بود ویل ساکت بود محسب به نظر می رسید. توی راه هم که می آمدیم نصفش را ساکت بود. گفتم بجم با دست حال می دیم. مطمئنم دوتایی می ببریمش. صندلی چرخدار را عقب عقبی می بردیم. یک دستش را من گرفته بودم و یکی دیگر را نیتن. کشن کشن را به طرف گذرگاه می بردیم و لاک پشتی جلو می رفتیم. مجبور شدم بایستم. دستم درد گرفته بود. لایه ی زخیم گل به چکمه ی نوع من چسبیده بود. بالاخره به گذرگاه رسیدیم. پتوی ویل از روی پاهایش سر خورده و لای چرخ گیر کرده بود. گوشهش هم پاره و گلی شده بود. ویل با بی اعتنائی گفت مهم نیست. نگران نشو. یه تیک کشمیر که بیشتر نیست. توجهی به حرفش نکردم. آها رسیدیم، حالا هم یه سرگرمی دیگه. آره، به راستی سرگرمی بود. واقعا کدام عقل سلیمی فکر کرد، پیست اسب دوانی باید مثل فروشگاه ورودی گردان داشته باشد. چه نیازی بود که بخواهن جمعیت را کنترل کنند؟ نگاهی به ورودی گردان کردیم، بعد به صندلی چرخدار فیل، بعد منو نیتن به هم نگاه کردیم. نیتن، جلوی باجه فروش بلیط ایستاد و موضوع را برای زن متصدی توضیح داد. زن سرش را برگرداند و نگاهی به ویل کرد. بعد به انتهای جایگاه اشاره کرد و گفت ورودی صندلی چرخدار اونجاست. صندلی چرخدار را طوری عدا کرد که انگار در مسابقه طرز بیان کلمه شرکت کرده است. ورودی سندلی چرخدار دست کم دیویست متر فاصله داشت. سرانجام وقتی به آنجا رسیدیم آسمان آبی یکباره ناپدید شد و جایش را باد و باران گرفت. طبیعی بود که چطر با خودم نیاورده باشم. من هم سرخوشانه یک ریز نظریه پردازی کردم و گفتم که چه مسخره است و چقدر خنده دار. حرفایم حتی به گوش خودم هم خوشگوار آزاردهنده می رسید. ویل عاقبت گفت کلارک فقط ساکت باش. باشه؟ خستم کردی. بلیط خریدیم. بعد هم وقتی سرانجام خودمان را به آنجا رساندیم، نفس راحتی کشیدیم. صندلی چرخدار ویل را به قسمت سرپوشیده که نزدیک جایگاه اصلی بود بردم. وقتی نیتن داشت به ویل نوشیدنی میداد من فرصت را غنیمت شمردم و نگاهی به تماشا چیها انداختم. بالای سرمان، روی بالکن شیشه‌ای مردهای کت و شلوار پوش به زنانی که لباسهای شیکی پوشیده بودند نوشیدنی تاروف می کردند. گرم و خودمانی به نظر می رسیدند. حد زدم که باید جایگاه مخصوص باشد. در باجه فروش بلیت در فهرست قیمتها متوجه وجود چنین جایگاه گرام قیمتی شده بودم. آرم قرمز روی لباسشان آنها را از بقیه متمایز می کنجکاف بودم بدانم آیا می شود ما هم درجه رنگ آبی آرممان را تغییر بدهیم؟ اما بعد با خودم فکر کردم تنها افرادی هستیم که با صندلی چرخدار آمده ایم. برای همین خود به خود از بقیه متمایز هستیم. لیوان پلاستیکی مچاله شده قهفه و بطری های بقلی نوشیدنی در سراسر جایگاه تماشاچیان پخش و پلا بود. مردها با و شلوار پشمی و زنها با بارانیهای خوشگل اپولدار همه جدیده میشدند اما ظاهرشان معمولی بود و مثل ما عآرم آبی زده بودند اطراف محوطه نمایش گروهی مرد با پیراهن راه راه افقی ایستاده بودند و ظاهرا در سفر تفریحی بودند سرهای تراشیدهشان نشان میداد سرباز هستند لابد میخواستند هر از گاهی سرود بخوانند یا سر و صدا راه بیندازند حتی شاید خورد فیزیکی پیش می آمد. کله های تراشیده را به هم می زدند یا دستشان را دور گردن هم می گرفتند. وقتی داشتم به دستشوی می رفتم، سود کشیدند و من دستم را پشت سرم گرفتم و یک بیلاخ تحویلشان دادم. بعد حواسشان پرت شد و تمام توجهشان جلب هفشت ازبی شد که کنار هم ایستادند. همهشان یکباره ساکت شدند و در جایگاه تماشاچیان آرام گرفتند. منتظر شروع مسابقه بعدی شدند. وقتی اسپا از, از دروازه شروع مسابقه عبور کردند، فریاد گروه کوچکی که کنار من بود به هوا رفت و من از جا پریدم. ایستادم و اسپا را که می تماشا کردم. مات و مبهوت مانده بودم. موج حیجانی که یک بار پشت سر آنها به جریان افتاد، غیر قابل فروکش بود، جوش و خروش پر از شادی تماشاگران سوارکاران را که برای مقام رقابت می به حیجان آورده بود. وقتی برنده از خط پایان عبور کرد تقریبا غیر ممکن بود که به توان ساکت ماند و ابراز احساسات نکرد و هورا نکشید. جام سیستر وود را تماشا کردیم. بعد هم میدن استکس. نیتن شش پوند در بندی برد اما ویل در بندی شرکت نکرد. خاموش و ساکت تمام مسابقه ها را تماشا کرد سرش در یعه بلند کتش ورو رفته بود. با خودم فکر کردم شاید چون خیلی وقت از بیرون نیامده همه چیز انده که برایش قریب است. با این حال می دانستم هرگز از درونش مطلع نخواهم شد. چندتا مسابقه رو باید تماشا کنید تا خیالمون راحت شه که آرزوی دیرینت برآورده شده؟ من گفتم: اینقدر بد اخلاق نباش؟ میگن هر چیز رو باید یه بار امتحان کرد. ولی به نظر من تماشای مسابقه از سواری جزو دسته رقص موریس و زنایی با محارمه که یه بارم نباید امتحان کرد. جواب دادم. تا یکی از افرادی هستی که همیشه به من میگی باید افقه دیدم و بیشتر کنم. هم که دوست داری. پس عده در نگر. بعد آنها تاختند. پیراهن من اومن ارقوانی بود با الماس زرد. میدیدم که با سرعت تمام دور نرده سفید می دود. سر اسب بلندتر شده بود پاهای سوارکار بالا و پایین میرفتند و دستهایش عقب و جلوی گردن اسبپرکت می می‌کردند. نیتن بر خلاف میلش وارد میدان شد در! مشتش گره بود نگاهش به گروه نامشخص اسبا ثابت بود که در قسمت دورتر پیست میتاختند من فریاد زدم. بجم روی تو شرط بندی کردیم تا استیک بخوریم نگاهش میکردم که تلاش میکرد جلو بزند ولی نمیتوانست صوراخ بینیاش گشاد و گوشهایش به عقب سرش کشیده شده بود احساس میکردم قلبم به دهنم آمده است وقتی به فرلنگ نهایی رسیدند فریادم رو به خاموشی رفت بسیار خوب قهوه به قهوه رضایت میدم جایگاه تماشاچیان از فریاد و جیب منفجر شد. دو صندلی آن طرفتر ما دختری بالا و پایین میپرید. از بس فریاد زده بود صدایش گرفته و خشدار شده بود. دیدم خودم هم سر جایم بالا و پایین میپرم. بعد سرم رو پایین گرفتم و دیدم ویل چشمانش را بسته است. چین لطیفی بین ابروهایش است. بیخیال میدان شدم و زانو زدم. ویل خوبی؟ جلوتر رفتم. چیزی لازم داری؟ جواب داد اسکاچ بزرگش چشمانش رو به طرف من گرفت دمق به نظر می رسید به نیتن گفتم بیا برویم نهار بخوریم من اومن آن حق باز چهار پا از خط پایان گذشت و با بدبختی ششم شد دوباره فریاد شادی به هوا رفت و صدای بلندگو به گوش رسید خانومها آقایان لوف بی ال مقام اول را به خود اختصاص داد. وینرسان به مقام دوم رسید و برنی رابل در جایگاه سوم قرار گرفت. صندلی چرخدار را در ازدهام جمعیت به جلو هل دادم. وقتی می‌دیدم به دومین به من بی‌توجه هستند، امدن صندلی چرخدار را به پاشنه پایشان می‌زدم. سوار آسانسور بودیم که صدای ویل به گوش رسید. خب که لارک یعنی تا الان چهل پان به من بدهکاری رستوران بازسازی شده بود قضا حالا زیر نظر سراشپز ماهری که چهرهش را در پسترهای دور تا دور پیست مسابقه دیده بودیم تاییمی میشد. از قبل فهرست غذا را بررسی کرده بودم و هر دو گفتم غذای مخصوصشون مرغابی با سس نارنجه به سبک دهی هفت داد. ویل گفت درست این لباس تو. حالا که دیگر در هوای سرد و میانه ازدهام جمعیت نبودیم روحیهش کمی بهتر شده بود. از لاک خودش بیرون آمده و کم کم داشت به اطرافش توجه می کرد. حالا که میرفتیم غذای گرم و لزیز بخوریم شکمم به قار قارقور افتاده بود. مادر ویل هشتاد پوند به ما داده بود. تصمیم داشتم پول نهارم را خودم بپردازم رسید رسیده رستوران را هم نشانش می ددم. در نتیجه هر قضایی دوست داشتم می توانستم سفارش بدم. مرغابی تنوری یا هر چیز دیگر. گفتم نیتن کلاً تو سری بیرون غذا بخوری؟ جواب داد من اغلب غذا می‌خرم و میبرم خونه. گرچه امروز خوشحالم که توی رستوران غذا می‌خاریم. از ویل پرسیدم ویل آخرین بار کی بیرون غذا خوردی؟ نیتن و او نگاهی به هم کردند. نیتن گفت از وقتی من اومدم که بیرون نرفته. دوست ندارم جلوی چش قریب و آشغ قضا دهنم بذارن. گفتم. پس میزی انتخاب میکنیم که صورتت به مردم نباشه. خودم انتظارش رو داشتم. اگه آدم مشهوری اومد خودت زهر میکنی. چون تو ماه مارس که پیست مسابقه گلیه آدم مشهور زیاد میاد اینجا. <تصفيق> در آسانسور باز شد. گفتم. آه. فیل ترینر. غذا رو به هم که نمی کنی. آخرین باری که رستوران غذا خوردم جشن تولد یه بچه چهار ساله بود. توی تنها سالان بولینگ هیلز بری. تموم غذاهاش هم از خمیر بود. اونم کناری مش بچه. وارد راهروی مفروشی شدیم. رستوران طرف دیگر راهرو بود. پشت دیوار شیشهی. و من می توانستم ببینم که میزهای زیادی خالی هستند. به قسمت سفارش غذا رفتم و گفتم سلام لطفا میز برای سه نفر زیر لب بزن گفتم لطفا بهش نگاه نکنید معصب میشه میخوایم بهش خوش بگذره. گفت آرمتون لطفا ببخشید متوجه نشدم آرم ویژهتون به روبر نگاهش کردم این رستوران مخصوص دارندگان آرم ویژه است. نگاهی به پشت سرم به ویل و نیتن کردم. صدایم را نمیشنیدند همچنان منتظر بودند. نیتن داشت کت ویل را درمیآورد. خب، نمیدونستم نمیتونیم اینجا غذا بخوریم. ما آرم آبی داریم. زن لبخند زد. گفت متاسفانه فقط دارندگان آرمی ویژه میتونن از این رستوران استفاده کنن تو آگهی تبلیغاتی مون قید شده. نفس عمیقی کشیدم. اشکال نداره. رستوران دیگه ای هست. متاسفانه الان دارن رستوران ویگینگ روم رو که برای عمومه باسازی میکنن. اما بیرون اقزیه فروشی هست که میتونین چیزی بخرید و بخورید. وقتی دید قیافم در هم رفت اضافه کرد پیگینگ پرک جای خوبیه میتونید سفارش ساندویچ همبرگر بدید با آساس سیب دکه فروشیه؟ بله به جلو خم شدم و گفتم لطفا کاری برامون بکنید از راه دوری اومدیم هوای بیرون خونه که دوستم سردش میشه راهی هست که بتونیم اینجا غذا بخوریم ما واقعا باید اونو تو فضای گرم نگه داریم. باید کاری کنیم امروز بهش خوش بگذره. چینی به بینی انداخت. خارج از مسئولیت منه. اجازه ندارم. اما طبقه پایین قسمتی برای تمام خواهانه که میتونید درشو ببندید. به پیست مسابقه دید نداره. اما گرم و نرم و دنجه. به او خیره شدم. خیزش فشار از در پاهاییم حس می کرد. به آرم روی سینهش نگاه کردم اسمش شارون بود گفتم شارون این همه میز خالیه مطمئنن خیلی بهتر که میزای بیشتری پر بشه تا اینکه نصفش خالی بمونه اونم فقط به خاطر یه قانون سری طبقاتی توی آین نامه چهره متبسمش زیر نور زاویه دار می درخشید خانم موقعیت رو براتون توضیح دادم. اگه این فرصت رو به شما بدیم باید به بقیه هم بدیم امروز دوشنبه است هوا هم که بارونی مشتری زیادی که نداریم میز خالی سفارش یه غذای کامل میدیم گرونترینش با تموم مخلفاتش دوست نداریم ساندویچ گاز بزنیم یا توی رخکم بشینیم که دیدی به هیچ کجا نداره اصلا هم مهم نیست که دنج و گرم و نرمه مشتری ها صورتشان را به طرف ما برگردنده و توجهشان جلب جر و بحث ما شده بود. ویل را می دیدم که مستره بست. او و نیتن متوجه شده بودند که مشکلی وجود دارد. شما باید آرم ویژه می خریدین. خیلی خوب. دست توی کیفم کردم و دنبال کیف پولم گشتم. چقدر میشه؟ دستمال کاغذی، بلیط اتوبوس و یکی از اسباب‌بازی‌های توماس بیرون افتاد. اهمیتی ندادم. فقط میخواستم ویل در یک رستوران لوکس غذای اعیانی بخورد. چقدر میشه؟ ده پوند؟ بیست پوند؟ یک دسته اس به طرفش گرفتم. به دستم نگاه کرد. م... شرمنده، ما آرم نمیفروشیم. اینجا رستورانه. باید برگردین و از باجه بلیت فروشی تایه کنیم همون یکی که اون طرف پیست مسابقه است؟ بله به هم زل زدیم صدای ویل به گوش رسید لئیزا بیا بریم لحظه احساس کردم اش در چشمانم حلقه زد گفتم نه نمیشه این همه راه اومدیم تا همینجا بمون من برمیگردم تا آرم ویژه بخرم بعد نهار میخوریم. لویزا، گرسنه نیستم. همین که غذا بخوریم سرحال میشیم. میتونیم اسباه و خیلی چیزایی دیگه تماشا کنیم. خوش میگذره. نیتن جلو آمد و دستش رو روی دستم گذاشت. آه، لویزا، فکر کنم ویل واقعا میخواد برگرده خونه. حالا مرکز توجه تمام رستوران شده بودیم. مشتری ها با نگاهشان ما را می کاویدند. نگاهشان از من به ویل می چرخید. با دیدن ویل احساس ترحم و شایدم نفرت می کردند. به شدت احساس شکست می کردم به زن سل زدم. دست کم حالا که ویل وارد صحبت شده بود زن اونقدر ادب داشت که قیافه شرمنده به خود بگیرد به زن گفتم خب ممنون از شما ممنون که این همه همراهی کردیم کلارک لحن صدای فیل هشداردهنده بود. ممنونم که اینقدر همدلی کردین. حتما رستوران شما رو به هر کسی که میشناسم معرفی میکنم. لویزا کیفم رو از روی پیشخان قاپیدم و زیر بغل زدم. وقتی داشتم از درک نیتن برایم باز نگه داشته بود رد می شدم صدای زن را شنیدم. رفیقتونو فراموش کردین. دنبال آنها وارد آسانسور شدم گفتم چرا باید این آرم لعنتی ویژه رو بخون؟ پایین رفتیم کسی حرفی نمیزد در تمام مدت کوتاهی که سوار آسانسور بودیم به خودم فشار آوردم تا مانع لرزیدن دستم شوم ما تا ساندویچ سفارش دادیم با سس سیب و بال مرغ برشته زیر سایبان راه راه پناه گرفتیم و مشغول خوردن شدیم من روی سطل زباله کوچکی نشستم در نتیجه همسط ویل شدم کمکش کردم ساندویچ رو بخورد اگر لازم میشد با دست برایش دیکه میکردم دو زن پشت پیشخان وانمود نموت میکردن توجهی به ما ندارن. ولی من متوجه بودم که زیرچشمی به ویل نگاه میکنند. بعضی وقتها هم که فکر میکردن حواس ما به آنها نیست، زمزمه میکردند، مرد بیچره. تقریبا میشنیدم که میگفتند چه زندگی سختی. تلاش میکردم اصلا به احساسی که ویل میتوانست داشته باشد فکر نکنم. باران بند آمده بود. پیست ما سابقه که باد دران قوقا میکرد، یک بار دلگیر و بیروح به نظر رسید. محوطه قهوهی و سبزش از تیکه کاغذ های شرط بندی ریخت و پاش و شلوغ بود. خط و یک نواخت و خالی به نظر می رسید. باران باعث شده بود پارکینگ خلوت شود. اما هنوز صدای بلنگو از دور می آمد که شروع مسابقه بعدی را اعلام می کرد. نیتن همینطور که دور دهانش را پاک می کرد گفت فکر کنم دیگه باید برگردیم. منظورم اینه که خوش گذشت اما بهتر توی ترافیک نیفتیم. بعد همین که صندلی چرخدار را در امتداد چمن به حرکت درآورد. یکی از آن دو زن گفت، خوشش نیامد؟ تهماندهی ساندویچ را داخل سطل انداختم و گفتم، نمیدانم، شاید اگر آدم فضولی اینجا نبود که بهش زل بزند، بیشتر خوشش میامد. راهندازی سطح شیبدار و سوار شدن به اتومبیل به زبان آسان بود. در چند ساعت گذشته رفت آمد اوتوموبیل پارکینگ را به دریایی از گل تبدیل کرده بود. علا رقم زور زیاد نیتن و شانه قوی من حتی نتوانستیم صندلی چرخدار را تا نصف مسیر روی چمنحل بدهیم. چرخ لیز میخوردند و صدای گوش خراشی می قادر نبودیم صندلی چرخدار را در مسیری هدایت کنیم که بتوانیم به جلو برانیم. پای من و نیتن در گل سور می‌خورد. تمام کفشمان هم گلی شده بود ویل گفت دیگه نمیام نیتن گفت فکر کنم به کمک احتیاج داشته باشیم حتی نمیتونم برش گردونم گیر کرده ویل آه صداداری کشید تا حالا او را اینچانین بیدل و دماغ ندیده بودم ویل اگه میتونستم کمی به طرف عقب کجش کنم میتونستم بالندت کنم روی صندلی جلو بذارم بعد شاید منو لو بتونیم صندلی و بلند کنیم و داخل اتومبیل بذاریم. صدای ویل از میان دندان به هم فشرده به گوش رسید. نمیخوام کارم به آتش نشانی بکشم. نیتن گفت. رفیق شرمنده. اما من و لو پس کار بر لو، تو بهتر از من بلدی. برو کمک بیار. میری؟ ویل. چشمانش را پست و دیگر چیزی نکن من کلم با غریبه ها راحت نبود اما فشار عصبی که در آن زمان حس می کردم، ترس را از من دور کرده بود. از یک گروه تماشاچی به گروه دیگر رفتم و گفتم چند دقیقه به کمکشان احتیاج دارم. آنها هم طوری به من و لباسهایم نگاه می که انگار برایشان دام گذاشتم. می گفتند منتظر مسابقه بعدی هستیم یا شرمنده یا تا ساعت دونیم باید صبر کنیم. حتی سراغ سوارکارها رفتم. ولی دیدم جسهشان حتی از من هم کوچکتر است وقتی به میدان مسابقه رفتم از خشمی که سراسر وجودم را فرا گرفته بود برافروخته بودم به گمانم با بداخلاقی سر مردم داد میکشیدم تا اینکه خوشبختانه با همان گروه از جوانانی که پیراهن راههای راه افقی پوشیده بودند مواجه شدم پشت پیراهنشان نوشته بود آخرین پایداری مارکی وقتی به آنها نزدیک شدم هلهلهشان به هوا رفت وسوسه شده بدم دوباره بیلاخت تحویلشان بدم یکی با دست ستبرش بشانم زد و جویده جویده گفت عزیزم لبخند بزن روز آخر تعدیلت مارکیه تلاش کردم بدون اینکه خودم را به بازم جواب بدهم امروز دو است شوخی نکن نبابا امروز دوشنبه است آره اومدم تا از شما کمک بگیرم. گوچیدو، کمکت میکنم. هر کمکی که لازم داری. بعد هم چشمک زد. رفقایش مثل گیاهان آبی دورو برش آرام تکان میخوردند. میخوام به دوستم کمک کنید. توی پارکینگ. گوچیدو، شرمنده. شرمنده، فکر نکنم بتونم کمکت کنم. ما بعدی شروع شد مارکی، تا روی اون شرط بندی کردی، فکر کنم من کرده باشم. صورتشان را به طرف میدان برگرداندند و توجهشان جلب آن شد. نگاهی به پشت سرم انداختم. اندام قوزگرده ویل را دیدم. نیتن هم دستهای های سندلی را می کشید ولی هیچ فایده ای نداشت. پیش خودم تصور می کردم که به خانه برگشتیم و به والدین ویل می گوییم که صندلی چرخدار گرانبهای های ویل را در پارکینگ رها کرده و آمده ایم. بعد چشمم به خالکوبیشان افتاد با صدای بلند گفتم سربازه، سرباز سابق یکی یکی صورتشان را برگرداندند. مجروح شد، توی عراق، فقط می امروز بهش خوش بگذره. اما کسی کمک نمیکنه همینطور که حرف میزدم اشک در چشمانم حلقه زد کجاست توی پارکینگ به خیلیا رو انداختم اما کسی محلم نزاشت اچا بیای همه دنبالم راه افتادند وقتی به آنها رسیدیم نیتن کنار ویل ایستاده بود با اینکه نیتن پتوی اضافی روی شانه ی ویل انداخته بود باز هم ویل از سرمایه زیاد سرش را تا تحت توی یقه کتش فرو برده بود. گفتم: « این جوون مردای اومدن کمک کند؟ یکی گفت: «کجا می‌خواید ببریدش؟ بقیه دور ویل را گرفتند و برای قهرمانشان سرتکان دادند. یکی قوطی نوشیدنی به ویل تعارف کرد گویی متوجه نشده بود که ویل قادر به گرفتن نیست نیتن به اتومبیل اشاره کرد. برگردونیمش به ماشین. اما اولش باید ببریمش به جایگاه تماساچی بعد ماشین رو عقب بیارم. یکی گفت. اتیاز به این کار نیست. دستی روی شانه نیتن کشید و اضافه کرد. ما خودمو میبریمش. نه بچه همه با هم گفتند آره. بعد خودشان را اطراف صندلی چرخدار ویل جابجا کردند. احساس ناراحتی کردم. به خودم جرأت دادم و گفتم: "راهش طولانیه که بخواید بلندش کنید و ببرید. صندلی چرخدارم خیلی سنگینه." اما همهشان بد جور مست بودند. کوچولو نگران نباش. واسه سربازه آسریم جونمونم بدیم. مگه نه ها؟ رفیق، نمیتونم اینجا بلد کنیم. ما هیچ وقت یه مرد و تنها ول نمی و نمیریم. با دیدن قیافه سردرگم نیتن محکم سرم را تکان دادم. ظاهرا ویل حوصله ی حرف زدن نداشت. اخ کرده و قیافه ابوسی به خود گرفته بود. اما بعد که جوانها دور صندلی چرخدارش را گرفتند و با یک بانک بلندش کردند، کمی وحشت زده شد. کدوم هنگ خدمت کرد. به خودم فشار آوردم لبخند بزنم. توی ذهنم دنبال اسمی میگشتم. ام، یگان تفنگدار یگان یازده هم. یکی گفت نمیشن ازم. به ته به جدیده. مهرمانه. توی عراق مستقره. کفش ورزشیشان در گل فرو رفت و من حس کردم قلبم هر فرو ریخت. صندلی چرخدار ویل چند وجب از زمین فاصله داشت. مثل تخت روان. نیتن جلوتر می دوید تا در ماشین را باز کند. توی کاتریک آموزش دیدن. گفتم. یکیش بود. بعد موضوع را عوض کردم. خب کدومتون دارید؟ شماره رد و بدل کردیم و سرانجام از دست مارکی و دوستانش خلاص شدم. دست درجیبشان بشن کردند و حدود چهل پوند جمع کردند تا برای توانبخشی ویل فیل هزینه کنیم. فقط وقتی کوتاه آمدند که من گفتم خوشحال می اگر از طرف ما خودشان را به مهمانی دعوت کنند. مجبور شدم با تک تکشان خداحافظی بکنم. وقتی بش تمام شد چیزی نمانده بود از حال بروم. اینقدر برایشان دستگان دادم تا در جایگاه تماشاچیان از نظر ناپدید شدند نیتن برایم بوغ زد تا سوار شوم. همینطور که داشتم ماشین رو روشن می کردم با شادی گفتم خیلی کمک کردن ویل گفت تمام بطری اونقدر بلند ریخ روی پای راستم بومیدم نیتن گفت نه بو نمیدی وقتی از ورودی اصلی خارج می شدیم میتن گفت آه نگاه کنی، اونجا رو ببینید پارکینگ توانخان اونجاست توان شماست فاکته ویل تقریباً بقیه روز را ساکت بود. وقتی نیتن را جلوی خانهاش پیاده کردیم، با او خداحافظی کرد. بعد دوباره تمام راه بازگشت به خانه را سکوت اختیار کرد. ترافیک کاهش یافته و دمای هوا پایین آمده بود. سرانجام، اتومبیل را بیرون ساختمان پارک کردم. ویل را از ماشین پایین آوردم و سوار صندلی چرخدار مخصوص خانه کردم. برایش نوشیدنی گرم آوردم. کفش و شلوارش را عوض کردم. شلوارش را که لک شده بود داخل ماشین لباس شوی انداختم. بعد هم بخاری روشن کردم. تلویزیون روشن کردم و پرده ها را کشیدم. فضای اتاق گرم و صمیمی شد. شاید به نسبت هوای سردی که بیرون گذرنده بودیم کمی زیادی گرم بود. وقتی کنار ویل داخل اتاق نشیمن نشستم و چای سر کشیدم، متوجه شدم که کلامی حرف نزده است. از خستگی نبود یا چون میخواست تلویزیون تماشا کند. نمیخواست با من حرف بزند. وقتی برای بار سوم به اظهار نظرم در مورد اخبار محلی واکنش نشان نداد. گفتم چیزی شده؟ کلارک تو به من بگو. چی بگم؟ تو میدونی که چیزی در مورد من هست که باید بدونی؟ خودت به من بگو نگاهش کردم سرانجام انجام گفتم. ببخشید میدونم امروز اونجور که دلم میخواست نرفت با این همه خوب شد رفتیم بیرون. واقعا فکر می کردم بهت خوش میگذره. بعد دیگر اضافه نکردم که خودش از قبل تصمیم داشت بد اخلاقی کند. نگفتم که نمیداند چه دردسرهایی کشیدم تا روز خوبی برایش تادارک ببینم. نگفتم خودش اصلا تلاش نکرد بهش خوش بگذارد نگفتم که اگر گذاشته بود آرم مسخره ویژه را بخرم می میتوانستیم مثل آدم غذای درست و حسابی بخوریم و مشکلات فراموش شود اینکه چه فکری دارم؟ چه فکری داری؟ تو با بقیه هیچ فرقی نداری یعنی چی؟ کلارک، اگه زحمت به خودت میدادی و میپرسیدی؟ اگه به خودت زحمت میدادی دادی و در مورد این گردش مسخره ازم می پرسیدی به ات می گفتم که از اسب و مسابقهش مترفرم یعنی همیشه متنفر بودم اما به خودت زحمت ندادی و ازم نپرسیدی خودت تصمیم گرفتی که دوست داری من چیکار کنم خودت جلو جلو رفتی و ترتیبشو دادی تو کاری کردی که دیگران می کنن. به جای من تصمیم گرفتی آبه را قورت دادم اما همین کارو کردی صندلی چرخدار را به حرکت درآورد و از من دور شد بعد از یکی دو دقیقه سکوت فهمیدم باختم